تردمندی را که در زمره اوباش سخن ببندد، شگفت مدار که آواز بربت با قلبه دوهل بر نیاید و بوگ انبر از گند سیر فرو ماند. بلند آواز نادان گردن افراخت که دانا را به بی شرمی بینداخت، نمی که آهنگ هجازی فرو ماند زبانگ تبل قاضی.